امیرخان روی تشکچه پدرش نشسته بود و بر مخده او تکه زده بود کتاب و دفتر را بر میزی کوتاه که قلمدان و دیوان حافظ محسن خان هنوز بر آن بود باز کرده بود و به ملوک میگفت الف ملوک تکرار میکرد الف امیرخان میگفت ب ملوک تکرار میکرد ب امیرخان پ ملوک پ امیرخان ت ملوک ت حالا با هم بگو اف ب پ ت سه پ ت بگو اف ب پ ت پ ت وقتی سه بار دیگر باز ملوک به را از حروف با حذف کرد امیرخان به فکر افتاد به شیوه دیگر این حرف را بر ذهن ملوک بنشاند و پرسید تو پدر تو چی صدا میکنی ملوک گفت امو امیرخان با ناباوری پرسید امو به بابات میگه اموم ملوه چون همیشه خندان و در بر بررفتن با گوشه چارغت گفت من قنداقی بودم که آقا مامش داد شما ننم شوهر رفت به اموم امیخان دید که بابا به کار به نمیآید و به دنبال کلمه دیگری گشت که با به آغاز شود و ظرف بلوری را که کنار به چای بود و پر از مویز نشان داد و این چیه؟ ملوه گفت خندان رو میگه آقا جان جنسشه جنسش چی؟ خو دیگه امیر خان. خندان دیگه امیرخان خندا میخواد چی باشه از خنده به پیچو تاب افتاد. ملوک پانزده سالی از امیرخان بزرگتر بود مهازا کلاسهایی که امیرخان برای آموختن خط به او و مش باقر کرده بود به نظرش نوعی بازی می آمد و گاه با شیطنت سر به سر امیرخان می بذاشت. روزهای متوالی پس از رسیدن خبر افتادن محسن خان از بام کاروانسرا، سرا امیرخان نمیتوانست به اتاق قلیان برود اتاقی که بیش از هر جای دیگر خانه یادآور پدرش بود امیرخان در این اتاق از محسن خان درس میگرفت. در این اتاق تکالیف مدرسه‌اش را به پدر نشان میداد. کاغذ و کتاب محسن خان را در این اتاق برایش منظم می کرد. هر وقت محسن خان با فرزندان کاری داشت به این اتاق میخواندشان. هر چه در آن اتاق بود ای با پدر داشت روی رف سر قلیان مراصب بر سه کوزه قلیان بلور صورتی سوار بود و کنار دیوار زیر رفس نارگیله ها و کوزه قلیان ها با سر قلیان ها و نی پیچ های متعدد به رنگ ها و شکل های مختلف بر طبقات چوبی قرار داشت. کتاب های محسن خان بقیه دیوارها را پوشانده بود و بر میز تحریر گوشه اتاق قلمدان ها و قلم تراش ها و سوف دوات و مرکب چین دسته های کاغذ و پاکت چیده شده بود محسن خان به هنگام تدریس بر تشک می نشست و عبا یا پوستینی بر حسب فصل بر دوش میانداخت و یک پا را تا میکرد تا زانوی دیگر را تا زیر چانه بالا می آورد و قلیان را به زیر پک می گرفت و پسرها را صدا می زد امیر خان در آن روزهای اول که میداند است پدر دیگر نیست دور از چشم دیگران تا کنار در این اتاق میرفت و با گردن کج و چشمان اندوهبار همونجا می‌ایستاد و از پشت در بسته محسن خان را در حالاتی که دیده بود مجسم می کرد صدای قلقل آب قلیان پدر را هنوز در گوش داشت و بوی تنباکو و گلابی را که در این اتاق میپیچید در مشام و چشمها را که میبست برک های گل سرخ را در نظر میآورد که در کوز قلیان شیشهای با هر قل و پک به رقص و بازی بر پدرش را می دید که از بالای عینک به برادرش چشم دوخته است و لبها را روی نی قلیان می گویی امید دارد با فشار لبها جواب سؤالی را که کرده است و عباس خان الغا کند پدرش را می دید که نگاهش را با سرور به او دوخته است و با ضرب جوابی که می لبهایش روی چوب قلیان بالبال بال, بال می زند. آخرین امتحان شفاهی را داده بود و خبر نمره هجده ای را که گرفته بود برای پدرش میبرد برد. محسن خان پرسید از کجا نمره فهمیدی؟ استراغ بسر کردی؟ امیرخان گفت خیر پدر نیازی نبود معلم نمره را جلو خودم در دفتر وارد کرد. پدر خواب سبیلش را با کف دست سنجید و با لبخند گفت اگر از عباس پرسیده بودم معنای استراغ بسر را نمی فهمی. محسن خان امیر خان را روز قبل از عظیمت به ساوه به همین اتاق اظهار کرده بود، آن روز نه باز خان حضور داشت، نه شم سلطنه، و پدرگویا کار روشنی با او نداشت، چند بار جوگای احوالش شد، و بعد برخواست و سر امیرخان را بوسید، و دوبار به پشت او زد و گلو را صاف کرد و گفت، به مشباغر بگوی شای لبریز و لبسوز و لبدوز بر من بیاره. امیرخان این اولین و آخرین بوسه پدر را که به یاد آورد در اتاق قلیان را گشود و داخل شد و در لحظات نخست ورود تصور کرد که هنوز قلقل آب قلیان پدر هم قدم با بوی تنباکو و گلاب در اتاق جاری است حالا چند هفته میشد که امیرخان کلاس درس خودش را به اتاق قلیان پدر منتقل کرده بود مشباغر هم از خنده ملوک به خنده افتاده بود ولی خودش را زود جمع جو کرد و گفت دکوش گوش بگیر حرفای امیرخانو دل بده به فکر فرداد باشتن میخوای نادان از این دنیا بدی مشباغر درس و مش را خیلی جدی میگرفت و با اینکه سر چهل سالگی شاگرد مکتبی شده بود به ضرب علاقه و پشتکار کم کم راحت می نوشت و راحت میخواند. برای نگه داشتن دخل و خرج خانه که محسن خان از سالها پیش بر عهده او گذاشته بود، سیاق می‌دانست و حالا به کمک امیرخان با عدد و رقم و جمع و تفریق هم آشنا شده بود. مشباغر در خانه پدری محسنخان به دنیا آمده بود و در کنار محسن خان بزرگ شده بود و پست و بلند زندگی را پا به پای او پیموده بود. شاهد نکاح و پدر شدن محسن خان بود و خود در خدمت محسن خان زن گرفته بود و زنش را خاک کرده بود. از اولین باری که محسن خان با قلمدان و کوله باری کتابهایش به پایتخت تخت آمده بود که مستوفی شود تا روز مرگ محسن خان که خبرش را چاپار آورده بود، مشباغر از او جدا نمانده بود. در معمولیتها مشباغر یا با بار و بنه از جلو می‌رفت یا با زن و فرزند محسن خان از عقب می رسید. محرم و معتمد و رازدار محسن خان بود. وقتی محسن خان در ترسن به مجلس رفته بود مشباغر رابط او با دنیای خارج بود در این آمد و شدخا و روح بردن و آوردنها و حرف و سخن شنیدنها مشباغر خود یک پا مشروط خاید و آتشه شده بود روزی که به طرف محمد علی شاه نارنجک پرد شد مشباغر در کوچه بود به خرید نان رفته بود سمن سنگک داغ خشکاش خورده را در بخچه سفید پیچید و روی سینه گرفت و از نانبایی بیرون آمد که سیل جمعیت را دید که فریاد و فخان از طرف سراح تخت بربری ها به چار روان و دوان است و سطح آشفته و برهم خورده سوار نظام هم در میان جمع پخش و پلا است قبل از اینکه بداند چه پیش آمده است از آبرین تنه خورد و بخشه نانش افتاد در میان جمعیت آسیم سر که پر حیاهو شتاب زده می و قرار نداشت فرصت خموم شدن و برداشتن بخچه نبود. مشباغیر به ناچاران را با پا به هاشیه معبر انداخت، آرخالوغ و غبا را تنگتر به دور خود پیچید و با فشار ته آرنج راهی قیقاج از میان جم باز کرد و خود را به بخچه رساند. بخچه باز شده بود و تکه نان به اطراف پراکنده بود و بعضی با زرب توکی پای دوندگان به میان چاله های پراب افتاده بود. مشباغر لختی صبر کرد تا حجوم آرام بگیرد و ازدهام رو به تنکی برود و بعد به گردآوری تختهای نان پرداخت. با سر از روی عصف دانه دانه را با آستین قبام می و باز در بخچه می پیچید. و درست در لحظه که می خواست گره بخچه را ببندد ای به طرف او خم شد و چیزی میان بخچه گذاشت و بیان که پاس سوست کند دور شد. مشباغر سر را بالا گرفت تا از کمک آبر تشکر کند ولی مرد از گوش راست گذشته بود و به سرعت به راه خود میرفت رفت. مشباغر صورت او را ندید و فقط رطوبت آنچه را به بار بخش افزود بود حس کرد و به گمان اینکه تکنانی نانی که مرد جسته و پستاده داده به گل گذرگاه حالوده است به شتاب دست برد تا نان زایه شده را دور بیاندازد. ولی دستش ابتدا به مایهای لزج و بعد به شیعی سخت خورد و تا مهره پشتش تیر کشید دشنهای روی دستی نان بود و لکی قرمز بر بخچهٔ سفید پهن میشد چشم مشباغر بر این سرخی سیاهی رفت اما جای درنگ نبود هنوز صدای سم اسبان سوار نظام و پای شتاب زده آبرین بلند بود بیان که برای بستن بخچه تعمل کند، بار را بغل زد، به جگر چسباند و تا در منزل قدم آهسته نکرد، و یک سر به بیرونی و به اتاق غلیان وارد شد، و جلوی توشکچه محسن خان از هوش رفت. وقتی به حال آمد، محسن خان در کنارش بود و شیشه سرکه را زیر دماغش گرفته بود، پنجره بسته بود و پشت دریه ها انداخته، محسن خان گفت هیچ نگومش باغر، من اینجا به غذا ننشستم مشباغر لبه سرداری محسنخان را چسبید و گفت ای آقا جان اگر نگم که دلم میپوکه اجازه بده حرف بزنم رنگ محسنخان پریده بود و چشمانش از نگرانی دودو میزد دست مشباغر را به هر دو دست گرفت و گفت خب بگو مشباغر گوشم با توه و مشباغر همه ماجرا را بازگو کرد رنگ خورده خرد خورده به چهره میرزا محسنخان برمیگشت آنگاش کم کم آرام میگرفت. پرسید، پس هیچ نفهمیدی که طرف چی بود، کی بود، چه کسی زخ خورده و چه کسی زخ زده، مشباخر گفت نه، به مویست بیلت قسم، به برکت که باید خوردم نه، محسن خان آهی از سر آسودگی کشید و از جا بلند شد، و در دو پیمانه شراب خلر شیراز ریخت، یکی را به دست مشباخر داد و گفت بخور دواس حال جامع. مشباغر پیمانه رو گرفت و پرسید آقا اگه من خون کرده بودم محسن خان گفت بخور بخور تو خون نمی کنی مشباغر اگر تا اون روز با محسن خان منسوب بود از آن پس جانش به جان اون بسته شد میدانست با وجود او در این دنیا پشت و پناهی دارد و کس و کاری اگر تا اون روز از قشم خانم رنجیده میشد از آن پس خربار خشم منزه سلطنه را به یک جو مهر محسن خان ترازون میکرد و به هیچ میگرفت. بیکستر از همه در این خانه بعد از مرگ میزا محسن خان مشباغر بود. و اگر هنوز در اینجا بند بود به عشق امیر خان بود. آخ بوی آقا رو میدوند. سیر کن چطا مثل آقا زانو به بغل زده سرش تو کتابه. و به صدای بلند گفت کی باشه که برا غلیون شاخ کنم آقا جا نمیل خواه. امیرخان سرش را از روی سرمشقی که برای ملوک مینوشت بلند کرد و با تعجب مشباغر را نگایت پرسید بر من مشباقه؟ و به صدای بلند خندید بعد اضافه کرد فعلا پاشو شاهنامه را بیار بخونیم نوبت توی مشباغر که زانو نشسته بود بلند شد و دو دستی شاهنامه چاپه سنگی را روی میز کوتاه جلو امیرخان گذاشت و رو به ملوک گفت تو هم بشین گوش بگیر خانوم دشف نداره خانم کوچیکم خوابه گوش بگیر امیر خان خیلی تو رو میخواد و در دل اضافه کرد و من خاطر تو ولی چه کنم که چموشی مشباغر چهارده سال زنداری کرده بود و حالا شش سال میشد که باز عذب بود بیوگی را تحمل میکرد با اینکه به مزاجش سازگار نبود در این شش سال چندین بار اجامت کرده بود و جای تیغ در گوشت میان درستخانه کتفش چون اثر پنجه حیوانی نشسته بود مدتی بود دل در گروه ملوک داشت همه جا چشمش به دنبال او بود در حیات خلوت که ملوک آستین بالا میزد و دو گوشی چارقد را به پشت سر میاندخت و دستها را تا آرنج در تشت رخت میبرد و می‌سابید و میشاند یا در آشپزخانه که سر چاهک چون میزد و پالانه را به دو دست می گرفت و پایین و بالا می تا آب سبزی شسته برود. یا کنار باخچه که چادر به کمر میبست و آتشگردان را مثل فلاخن به دور سر میگرداند تا تا های زغار به گرد قامتش حاله میبست یا در ایوان اندرونی که به بوجار حبوبات مینشست یا در صندوق خانه که قند می شکست. ملوک ترمزاج و سرخوش بود. از گونه های چالدار و نوک انگشتان هنابستش خون می شکید. از بام تا شام در خانه به تقلا بود دلاغ و راست می شد. فرمان می بود. لباس باد می داد. گرد می جارو جارون می کرد گلوله زغال می بست. ترشی می انداخت رو به انار می جوشاند. مربای بهار نارنج می پخت. کشک می سابید. رشته می برید سبزی خشک می کرد و خنده از لبش نمی افتاد. وقتی مشباغر بعد از گرفتن خبر مرگ محسن خان بیمار در بستر افتاد ملوک تیمارش کرد برایش جوشانده برگ سماغ و دم سنبل تیپ تیب می آورد بادکشش می و پاشوگهش می کرد و هر بار به مشباغر که از حیا به خود می‌پیچید و در سپردن تن و بدن به زنی نامحرم مقاومت می کرد می گو جای برادرم باشی پیره تو پس بکشت را کردی بخورم. خوان و خنده را سر چنان تر چنان فرز کارها را می کرد که حتی زهرا سلطان فرصت قر زدن یافت. فقط گاه که ملوک در هین کار زیر لب و نرمک نرمک آبازی میخواند میگفت آقا اندرونییه چه سفیدی نکن صدا تو سر نندز دختر و ملوک باز خندید و گفت آقا کجا صدای منو میشنو زهر ا سلطان و زمزمه را بلندتر میکرد مشباقه فکر کرد چه موشی باش چکنم جوانی الای نمیری و به پای من پیشی